سوره مبارکه غاشیه در سوره اعلا هم موضوع توحید خاندید و هم موضوع تزهید من الدنیا اینجا هم همون موضوع دوم یعنی بحث تزهید من الدنیا بیان میشه اما قبلا ابتداعا تخویف هست الله عز و جل میفرمید هل اتاک حدیث الغاشیه بعضی میگه استفام تقریری است آیا پیش شما سخن غاشیه آمد غاشیه نامی از نامهای قیامت هست معنایش هست اون چی که در برگیرنده هست تحت پوشش قرار میده چون قیامت میاد همه ما رو در بر میگیرد همه را تحت پوشش قرار میده به این خاطر نامش هست غاشیه شاولی الله رحمه الله ترجمه کرده آیا پیش شما آمد سخن قیامت غاشی به ترجم قیامت ترجمه می کند لذا قیامت که تحت پوشش قرار میده. و بعضی می هل به معنی قد هست چنانچه شما قبلا خاندی هل اتا على الانسان یعنی هل اتا قد اتاق حدیث الغاشی اون سخن قیامت که شما را تحت پوشش قرار میده، اون پیش شما آمد یعنی خدا برای شما تعریف می کند بیان می کند اما احوال اونجا چگونه هست؟ قیامت به چه وزیعتی است، به چه شرائطی هست؟ وجوهی یوم ایدن خاشعه چهره هایی هست که در اون روز به پایین هست یعنی سر بزیر هست از بس که خجالت میکشه، از بس که شرمنده هست یوم ایدن خاشعه تفسیر مظهری گفته ذلیلت من الحزن والهوان، از بس که مغموم هست و از بس که ذلت برش آمده ها پایین هست عاملت ناصبه چهرهایی هست که خیلی عمل کرده اما خسته به نظر می رسد یا عمل می کند دو تا تفسیر دارد یکی اینکه که این در رابطه با افرادی هست که در دنیا مسیرشان مسیر کفر بود مسیر شرک بود در همون مسیر کفر و شرک خیلی کار کردند بگمان خودشون خیلی زحمت کشید این مشرکین گاگاهی ده تا بیست تا تا شطور برای خدایان یعنی خودشون میکشند لذا شب تا صبح نشسته بودن به پای معبودان خودشون پس عامله عمل میکردند و ناصب خسته بودن انسان وقتی که یک عملی میکند و بعد از این نتیجه از عمل میگیرد تمام خستگیش دور میشه اما وقتی که نتیجه نمیگیرد ده روز بود و بود و بعد از ده روز هیچ نتیجه نگرفتی خستگی تا زنده هست از بدن انسان خارج نمیشه لذا اونها چون که در دنیا خیلی عمل کردند، در دنیا خیلی تلاش کردند، نتیجه نگرفتند، اونجا وقتی که رفتند چون راهشون راه خرافات بوده، مسیرشون مسیر شرک بوده، وقتی که اونجا رفتند پیش خدا به جای اینکه پاداش بگیرند، به عذاب گرفتار شدند لذا به این خاطر خداوند اونها را میگوید عاملت ناسبه یعنی عمل کردند اما خسته شدند چونکه عملشون هیچ نتیجه مطلوبی برای اونها نداشت این یک تفسیر است اما تفسیر دوم عاملت ناسبه مربوط به خود قیامت است اونجا کارهای داره می کنند که خستهشون می کنند. چه کار می بیل می تیشه می نه بلکه اینها اعمال شاقه و اعمال سختی که متقب میشند و خستی میشه اینه که کلی بار بدوشی اونها است چه باری بدوشی اونها است؟ کلی توق و زنجیر و از اینها هست که برگردن اونها دارن اینها رو با خود کش می دهند تفسیر ابو سعود همینه نویشه تعمل اعمال شاقه تتعبو فيها. اعمال مشکلی انجام میدن که با اون اعمال مشکل خسته میشند. و جر السلاسل والاغلال والخوض في النار. با خودشون زنجیر می با خودشون توق می و تو آتش لذا اینها با چه سختی، با چه مشکلات میرند و خسته میشند؟ ولی این پایانی ندارد الله نجات بده لذا الله می فرمه این چهره هایی که سرشون پایین هست و شرمنده رو هستند عاملتون ناسبه عمل کننده و خسته شونده هستند تصلا نارن حامیه اینها داخل می شوند. در اون آتش داغ آتشی که سوزان هست و اون آتش اونها راحت نمی گذارد تسقا من عین ان آنیا و پذیرایی می با نوشیدنی آبدادی می شوند از ای که آنیا آنیا یعنی خیلی داغ چنان داغ که من بلغت منتهاها فی الحر از نظر حر و گرمی و جوشش به آخرین درجهش رسیده ست درجه جوش دارد 100 درجه یا بالاتر از 100 درجه هر چی که بالاترین حدش هست اون از نظر حرارت و گرمی به اونجا رسیده ليس لهم طعام الا من ضریع بلای این جهنمی ها غذای دیگه نیست خوراکی دیگه نیست مگر از ضریع است ضریع چیه ضریع را کسانی که در سرزمین حجاز زندگی میکردند اونها میدونستند که ذریع چیه حضرت عکرما و مجاهد رحمهم الله میگویند که ذریع یک بوته ای است نبت نبات ذو شوک ای که خار دارد لاصق بالارض به زمین چسبیده که قریش و عرب ها اون را میگفتن شبرق تو سمیه قریش شبرق بسیار خطرناک حیوانی اگر اون را میخورد فوراً میمرد. حیوان نزدیکش نمیرفت. اذا کان رتباً، زمانی که تر باشه به شبرق میگن، اما خوش بشه ظریم میگن. فا اذا یب ایسا لا تقربه داب ولا بهیم. حیوان و چارپا اصلاً نزدیکش نمیره. ولا ترعاه اونجا نمیچرد و هو سم قاتل. وَهُوَ الطعام و وَأَشْنَعُهُ سم قاتل در بدترین غذا هست لذا الله می فرماید که از این ضریع اهل جهنم میخورند این چهره هایی که شرمندرو و خجل هستند از می اون میخورند خورند اون ضریع آیا برای اونها دفع گرسنگی می کند آیا اونها را سیر میکنه آیا اونها را چاغ و چله میکنه؟ لا يسمن ولا يغني من جوع نہ چاغ میکنه و نہ گرسنگی را دفع میکنه به غیر از اینکه بیشتر شکنجه میده انسان را بیشتر اذیت میکنه کار دیگه نمیکنه اینها کسانی هستند که منکر بودند اینها کسانی هستند که در جهت مخالف بودند اما وجوه یومئذ الناعمه لسعيها راضيه بشارت هست الله می فرماید چهره های دیگر که در اون روز تر و تازه هستند ناعمه یعنی شاداب خوشحال تر و تازه لسعیها راضیه برای سعیی که در دنیا کرده راضی است در دنیا با رب رابطه داشته در دنیا صدقه میداده، در دنیا به بینواها می رسیده در دنیا در دل شب خدا را با اخلاص سجده می کرده در دنیا تمام اعمال نیک و کارهای خیر را با خلوص انجام میداده. اون زحمتی که در دنیا کشیده اون زحمت را برای اون رازی هرچی که خستگی تحمل کرده ارز کردم انسان وقتی که یک خستگی را تحمل بکند و بعدا نتیجه بگیرد به محض اینکه که نتیجه می گیرد تمام خستگیش رف میشه لسعیها راضیه فی جنت عالیه انها در جنت و در باغاتی هستن که عالیه بسیار جایه بلند و بالائی هستن لا تسمع فيها ها در اون بهشت نمیشنود هیچ سخن بیهودی سخن لغوی سخنی که عیش انسان را مقدر بکند خاطر انسان را پریشان بکند در دنیا انسان هر چی که در ناز و نعمت باشد هر روز از این سخن ها میشنود یه روز اخباری میاد انسان پریشانه صبح بعد میمیرن که یه خبر از اون پریشان فری آمد یا از همسایه از رفیق از فرزند از پدر از هر کسی صحبت ناگواری میشنوی دلت میشکنه تمام خوشی انسان ناخوش میشه اما اونجا نه اونجا در حد یک کلمه‌ای که انسان ایشش مقدر باشه نمیشنود چه برسه به بقیه مصائب و بقیه پریشانی ها فیها عین جاریه در آن بهشت چشمه ای هست که جاری هست فیها سرر مرفوعه در آن بهشت تخت هایی هست که بلند و بالا هست خیلی بلند هست و خیلی مرتفع هست مرتفع لاهلها و اکواب و موضوعه و همچنین هست که اونها گذاشته شده هر جا هر جا تا میری دلت اشتحامی کند جامعه گذاشته شده بر میداری از شراب بهترین نوع شراب و نمارق و مصفوفه و پشتی های بالش هایی که مصفوفه به صف چیده و کنار هم گذاشته شده و ضرابی و و همچنین قالیچه هایی که مبسوس یعنی مفروشه فرش شده و پهن شده اونجا همه اینها برای انسان هست برای بهشتی هست تمام نعمت ها اینها بعضی از نعمت هاستن ها که اینجا ذکر شدن و بعد از این خدا تعالی چند تا از دلائل را ذکر می‌فرماید افلا ينظرون الابل کیف خلقت آیه شطور نمیبینن که چگونه آفریده شده ببینید هر, م... هر مخلوق خدا آیه ای هست بر عظمت پروردگار از مورچه گرفته تا فیل از کوچکترین گرفته تا درخش ترین بزرگ ترین همه اینها آیات هستند همه اینها نشانات هستند ما اطلاع نداریم درباره اینها درباره زندگی اینها گاهی انسان بعضی کتابهایی که مربوط به حیات حیوانات هستند زندگی حیوانات هستند زندگی مورچهها زندگی پرندها زندگی زنبورها زندگی بقیه حیوانات انسان تعجب میکنه که اینها واقعا چه نظمی دارند چه ترتیبی دارند الله تعالی انহারা با چه خواصی آفریده به هر یک یک قدرت داده به یک هر یکی یک دا قوت داده مثلا بمورچه میگن قوت شامه دارد که ہم مورچہ ہم مگس کہ از فاصله بسیار دور الان اون فاصله یادم نیست از فاصله بسیار دور غذا و بوی غذا و بوی شیرینی را و بوی خوراکی را احساس می کنند. شما گاهی می بینید که یک شیرینی برداشتی بردی تو گذاشتی خب صبح وقتی بلند میشه پر مرچه از کجا آمده؟ خب انسان تعجب می کنه که این را بچه ندیده که بیاد برداره ولی این مرچه از کجا آمد؟ الله عزواجل خواست عجیبی تو اینها گذاشته همه اینها عجائب داره همه اینها بعضی شگفتی ها توشون هست اما شطور را الله ذکر فرمود به چند دلیل یکی این که شطور حیوانی بود که عرب ها بیشتر باش سر و کار داشتند بیشتر باش مراوده داشتند ارتباط داشتند و مالداری اونها شطور بود و بعد بعضی از خواصی که شطور دارد بسیار عجیب است اولا شطور از اون حیواناتی است که نسبت به همه حیوانات بیشتر میتونیم ازش استفاده بکنیم هم میتونیم از سواریش استفاده بکنیم از سواری گوسفند شو نمیتون استفاده بکنید هم میتونید هر باری که دلتون میخواد باری که شطور میبرد هیچ حیوانی اون بار را نمیتونه تحمل بکنه انسان گاهی میبینه سبحان الله این به اندازه یکی از همین ماشینهای باربری بزرگ بار بر اون میگذره هم میره و باز از پشم شتر استفاده که میشه از پشم هیچ حیوانی اون استفاده نمیشه شیر شتر خواصی که دارد هیچ حیوانی شیرش اون خواص را ندارد و همچینی گوشت شتر یعنی از هر عضبی از اعضای شتر استفاده میشه و بعض خودش شتر خواصی عجیبی داره الله عزوجل به اون چنان پاهای نرمی می داده که گوی ابر هستند و از هر ریگی میره بقیه حیوانات نمیتونن راه برند ولی این در ارز کنم ریگستان شطر را در زبان عربی میگن سفینه تولبر یعنی کشتی خشکی هست بقیه حیوانات پایشون تو ریگ میره اما این نه این را خدای تعالی چنان ابروار آفریده که گوی سبک هست با اون وزنی که داره اصلا تو ریگ نمیره و بعد الله تعالی در شتون کوهانی گذاشته چربی گذاشته که تا ده روز اگر آب نخورد و تو بیابانی باشد از اونجا خودش را میتوند که آتشش را برآورده بکند لذا خواص بسیار زیادی در شطور الله تعالی گذاشته و وفای که شطور دارد معرفتی که شطور دارد شناختی که شطور دارد و همچنین کینه‌ای که کی شطور دارد اینا همه بالاخره اینا همیشه ضرب المثل هستند لذا الله تعالی این حیوان را که یکی از واغن از آیات الهی هست و از نشانه قدرتی الله تعالی است و بعض خوراکی که هیچ حیوانی نمی خورد بقیه بوتا اگر تلخ باشد اگر خار داشته باشد حیوان دهن نمی زند اما شطور هیچ پرواهی ندارد هر چه باشد جلوش می خورد لذا خواست شطور زیاد است. لذا الله می افلا ینظرونه الیل اولی کیف خلق همه این خواستی که بنده ارز کردم و از این خواست خواست دیگری هم دارد می بینید که چگونه آفریده شده؟ وَإِلَى السماء كيف رُفِعَتْ الان بعضیها ربط این آیات رب با گزشتی انگونه بیان کردن چون ما در گذشته خاندیم فیها سرور مرفوع و اقواب موضوع و نمارق و مصفوف و زرابی مفتوث چار چیز بودن چارتا تا بعدن خدا بیان می رب اینها را بیان میکنن که تقریبا بنوی تکلف هم هست چونکه شاید برای کسی این سوال ایجاد بشه که تخت که وقتی بالا هست اون تخت‌ها را خدا میفرما بالا هستند اون تختها چطور بریم روی تختا نردبان داره دیانا خدای تعالی مثال شطور بیان فرمود هیچ حیوانی نیست که بخابت شما سوارش بشید نه اسب و نه الاغ نه بقیه حیوانات اما شطور می‌خابت لذا اون تختها هم مثل شطور می‌خوابند انسان روی اونها قرار میگیره بعدا میره بالا یا مثال را بنده همیشه مثل آسانسور را عرض میکنم که دکمه نمیزنی میاد پاین شما سوار میشو بعد میره بالا دکمه دیگر شبیه این هست شبیه شطر شطر, شطر هم یک نمونه یا زمین است. لذا افلا ضرورن الى الابل کیف خلقت شطر را نگاه نمی کنن نمی بینن چگونه آفریده شده و الى السماء کیف رفعت آسمان را که چگونه آسمان رفی و بلند و بالاست آسمان را اللہ تعالی چیونه زیبا آفریده و در آسمان ستاره ها چی طور چی هستا موضوعه هستن همون طور که اینجا فرمود اکواب و موضوعه هر ستاره یک جا هست هر ستاره جای مقصوصش هست همچنین جامحا در فضا و در هوا هر جا که شما لازم نیست میزی باشد لازم نیست جای خاصی باشد تا اشتها بکنی اونجا موضوعه هست و جامی از جا های شراب برای شما گذاشته شده. لذا نفلا ينظرون الى الابل کیف خلقت مربوط به اولیی هست فیها سرور و مرفوعه و إلى کیف كيفرورفات مربوط به دومی هست و اکوابون موضوع. و الى الجبال كيف نصبت کوها را ببین چیگونه کنار هم نسب هستند. یک رشت کویی از این جبور تا شهر دیگه. تا صد کیلومتر کوه کنار هم. گویر نشستند و با هم دارند مجلس دارند اون نمارق و مصفوفه را می این مربوط به اون هست که همون طور که کوها در کنار هم درست چیده شده اند در یک صف در یک رشته همچنین پشتی ها و قالین ها و ال الارد کیف ستحت این مربوط با زرابی هست زرابی همون طور که زمین فرشه و زمین مسطح است برای شما اون قالیچه ها هم برای شما فرش هستن و اونجا پهن هستن در بهشت لذا الله چهار چیز را ذکر کرد اینها واقعا هر یکی یکی از اجائب هست شطور راز کردم اجائب زیادی توش هست آسمان را نگاه کنی سبحان الله چه اجائبی هست بعضی از عجائب آسمان را ما می بینیم، مشاهده میکنیم چه خورشیدی درش هست چه ماهی چه ستاره چه درخشندگی چه زیبایی چه منافع دیگری از آسمان برای ما گاهی میاد باران میاد رزق و روزی از اونجا میاد و آسمان بسیاری از سنگهایی که به طرف ما هست، خطراتی که به طرف ما هست، اونا را تحلیل میکنه، اونا را زوب میکنه، اونا را از بین میبره، همه این منافع را وقتی که انسان فکر بکند، به این نتیجه میرسد که واقعاً چه اجائبی دونه هست، و ال الجبال کیف نصبت، کوها ربی ببین چگونه نصب شده، و کوها چه آیات بزرگی از آیات رحمان هستند، اینها مثل میخ، به زمین زده شدن و زمین را نمی که تکام بخوره، نمی که جنبش داشته باشه، نمی که بلرزد و مثل میخ محکم گرفتن و ال الارض کیف ستحت زمین سبحان الله ما چند جا این آیه را خاندیم آیه زمین را که چه منافعی برای ما داره، خوراکی را از زمین، استخراج میکنیم خونه های تو زمین میسازیم راه ها را در همین زمین برای خودمون درست میکنیم مو... اموات خودمون را در همین زمین دفن میکنیم آب و چاه و قنات و هر چی که ما نیاز ما از همین زمین لذا هر یک از اینها آیات هستند این آیات الهی را ببینید فذکر انما انت مذکر بعد از اینکه آیات تفهیم شدند آیات جا افتادند لذا به وسیله این آیات مردم را پند بده موعظه کن نصیحت کن انما انت مذکر جزی نیست که شما پند دهنده هستید بنده همیشه اینجا سخن حضرت مولانا عبیدالله سندی رحمت الله علیه را که بر این آیه هستند هم برای طلاب و دعوتگران دین نقل میکنم ایشون میفرمایند قبل از دعوت و قبل از تذکر خدای تعالی چهار مخلوق را نام برده که این چهار مخلوق از اجائب هستند و بعد از این به ما دعوت گران دین خودش فرموده که دعوت بده وقتی که می کنیم اینها را میگن اشارات آیات یک تفسیری هست به نام تفسیر اشاری مفهوم ظاهری آیه چیزی دیگه هست اما از کنار آیه از گوشه آیه از اشاره آیه ما چکار میکنی؟ یک برداشت دیگری را که اون هم با اصل مفهوم در تناقض نیست در تضاد نیست برداشت میکنیم حضرت شیخ عبیدالله سندی رحمه الله که از مبارزان انقلابی بود از کسانی که با انگلیس مبارزه کرد و از دعوتگران و از پرچمداران جهاد بود میفرماد. این چهار آیه زمین که چهار آیه هستن چهار وصف خدا تعالی برای یک داعی دین بیان فرموده این چهار وصف چیه؟ اولی افلاهان ظرونة ال الابل کیف خلقت به شتر نگاه کن که شطور را الله چطور خلق کرده خواصی شطور را نگاه کنی شطور حیوان ساده ای هست حیوانی نیست که ناز توش باشه حیوان نیست که هر خوراکی نخورد بعضی حیوانات هستند یکی از عزیزان از این بوزهای فرانسوی گرفته بود بوز سانن میگم بهش این نمیدونست از همین علفها و کاهو از کنم غذای معمولی حیواناتی دیگه به اون داده بود چند روز بعد مرده بود بعد اون کاشنا گفت نه این هر غذای نمیشه بهش داد این غذای مخصوصی داره باید اون غذای بهش به لذا اما شطور نه شطور ساده هست هرچی بدی میخوره چه علف خشک باشه چه علف سبز باشه چه از کنم که تعمش تلخ باشه چه تعمش شیرین باشه چه خار داشته باشه چه خار داشته نباشه و تحمل میکنه سختی ها را گرس نگی را تش نگی را و از مسیر خسته نمیشه مسیر خودش را میبرد ولی اینکه تش باشه گرس نباشه می گوین یا داعی دین باید دین طور باشه این خصلت را از سطور بگیرد بعد اهل اهل تکلف نباشد اهل تنعم نباشد اهل تشریفات نباشد اهل زرق و برق نباشد فقط عادت نکند که سفره آنچنانی داشته باشد باید در این مسیر گاهی به قول استاد رحمت اللہ علی، گاهی کتک میخورید گاهی چلو مرگ میخورید هرچی باشد باشد بلاخره مسیر خودش را بپیماید و خسته نشه بر جلوتر مثل چطور باشد و چیزی محیا میشه یا نمیشه چیزی فراهم میشه یا نمیشه گرست نیست یا تشنه است خسته است یا نیست در این مسیر خسته نباشد و سادگی را از بیاموزد این اولین صفت هست که در این آیه اشاره شده وَإِلَى السماء کیف رفعت. اما رفعت را، رفعت دید را، نظر بلند را، دورندیشی را، افق بلند داشتن را از آسمان بیاموزد آسمان چقدر بلند است، دیدت همین قد بلند باشد دور را نگاه کن، جلو پایت را نگاه نکن، اون دنیا را نگاه کن و حرکت کن این دنیا را اصلا نگاه نکن لذا یک دعوتگر یک داعی یک مخلص باید این بلندی دید را از آسمان بیاموزد و الى الجبال کیف نصبت کوهارا نگاه کن استقامت را از کوه بیاموز هر چی باشد دنیا تکان میخورد ولی کوه تکان نمیخورد لذا مثل کوه استقامت داشته باشد هیچ توفانی نباید او را از مسیرش وادار به عقب نشینی بکند او را وادار بکند که اون دست از کار بکشد نه باید کوه استقامت کوه صبر و ثبات باشد و ال الارض کیف سطحت و در پایان میفرماید که باید تواضع را شکست نفسی را گرچه افقش بلند باشد اما خودش نفسش متواضع باشد مثل زمین باشد از همه پستر از همه پاینتر از همه کوچکتر و الى الارد که فسوط حد زمین را نگاه کن که چگونه پان شده چگونه به زیر افتاده وقتی که این چهار صفت را داشتی ای دعوتگری ایمانی فذکر انما انت مذکر اون وقت پند بده اون وقت نصیحت کن. اون وقت شما مذکر هستید پند دهنده هستید لست علیهم به مسیطر اون وقت وظیفه تو هم پند دادن است شما هم نگهبان و محافظ نیستی که حتما مردم ایمان بیارند حتما مردم قبول بکنند نه شما پندت را بده و کارت را ادامه بده الا من تولا وكفر این الا اینجا مستثنا منقطع بمعنی هست به معنی لکن است شما پندت را بده شما مسیرت را ادامه بده لیکن هر کسی که پشت بدهد خیرخواهی شما را گوش نکند و کفر کفر بکند ناسپاسی بکند کفران نعمت بکند یا به خدا کفر بکند فیعذبه الله العذاب الاکبر پس خدا او را عذاب میده عذاب بزرگ عذابش هم معمولی نیست عذابش در حد عرض کنم که یک زخم نیست بلکه عذاب بسیار بزرگ الله نجات بده ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم همانا بسوی ماست بازگشت آنان سپس بر ماست حساب و کتاب اونها از اونها حساب میگیریم این بو سوره مبارکه قاشیه که بیشتر موضوعش هم قیامت بود و هم احوال قیامت در قیامت چه خبر هست و چه مسائل هست و همچنین بعضی از دلائلی بر توحید و از آثار قدرت پروردگار بیان شد.